وجودش مسلمین راه اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است عدوی ظلم و تغیان و فساد است ستم گرمش و در قرآن وجودش مسلمین راه اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است عدوی ظلم و ستم و فساد است ستم گرمش و در قرآن وجودش مسلمین راه اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است عدوی ظلم و تغیان و فساد است ستم گرمش و درسوای قرآن بیا بشنوزی دل آوای قرآن نوایی دل کشوزی بای قرآن هران کس چون با قرآن دل ببندد نبیند آیت همتای قرآن بیا بشنوزی دل آوای قرآن نوایی ای دل کشوزه بای قرآن هران کس چون با قرآن دل ببندد نبیند آیت همتای قرآن Wujoodash muslimin ra ittihad ast nidayash ay muslimanan jihad ast aduwi zulm tughyan o sitam Garmesha me shavad quran wujoodash muslimin ra ittihad ast nidayash ay muslimanan jihad ast aduwi zulm sitam Garmesha me shavad raswaye quran kalam-i کلامی کبیریا هست خدا را او به یک تاهی گواه هست چو قرآن گلشنی پاکی خدا هست معتر کن دل از های قرآن کلامی او کلامی کبیریا هست خدا را او به یک تاهی گواه هست قرآن گوش پاکی خدا هست معترکون دل از جل قرآن وجودش مسلمان اتحاد است نداش ای مسلمان جهاد است عدوی زول فساد است ستم گرمش و درس وای اتحاد است نداش ای مسلمان است ظلم و و فساد است ستم گرمش و در اسوای قرآن ندیده کس مثالی او کتابه دعای عاشقان را مستجابه زی قرآن مونسی بهتر نیابی خوش آن کس کی شد همراه قرآن ندیده کس مثالی او کتابه دعای عاشقان را مستجابه زی قرآن مونسی بهتر نیابی خوش آن کس کی شد همراه قرآن وجودش مسلمین را اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است عدوی ظلم و تغیان و فساد ستم گرمش و درسوای قرآن وجودش مسلمین را اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است عدوی ظلم و تغیان و, و فساد است ستم گرمش و درسوای قرآن خدای از تو می خواهم سعادت بده توفیق دوری از شقاوت نگه با عشق و حلاوت بد رمزی پا بر جای قرآن خدایا از تو می خواهم سعادت بی توفیق دوری از شقاوت نگه داره با عشق و حلاوت به دلها رمزی پا بر جای قرآن وجودش مسلمین را اتحاد است ندایش ای مسلمانان جهاد است عدوی ظلم و و, طغیان و فساد است ستم گرمش و در اسوای قرآن وجودش مسلمین را اتحاد است ندایش ای مسلمانان chodas a dui zulmtujonu fasodas Si tam garmesia ładra słoi kur, si tam